و بعد سوره زلزال سوره عادیات هست که ام سوره های مکی هست سوره زلزال مدنی بود در سوره زلزل بر اناد کفار و مشرکین زجر و سرزنش بود در این سوره در سوره والعادیات زجر بر ظلم کفار هست منظور از انسانی که ظلم می کند همون کافر انسان کافر مراد است اما الله عز و جل سوگند یاد می کند به اصباح این اصباح که ارزشمند هستند بخاطر این که اینها مرکب جهاد هستند اینها اسباب جهاد مجاهد هستند لذا مقدس هند ارزشمندند خدای تعالی انها را به عنوان شاهد ذکر می فرماید و العادیات ضبحا عادیات قسم با اون اسبه که تند میدوند ضبحا یعنی شیه کشان در حال که اسبها ها شیه میکشند و در واقع وقتی که میروند یک صدای مخصوصی که نوع تشویق و ترغیب هست در واقع به جهاد و به جنگ لذا اون اسبها که با اون کیفیت میروند اونها شاهدن فالموریات قطحن، اونایی که روشن کننده هستن جرقه را یعنی وقتی که اسب صم بش به خصوصم به اسبش یک آهنی ابزاری بهش زده باشند و روی سنگ ها تند میره اون برخورد اون آهن و آ آ سنگ جرقه پیدا میشه اون را الله تعالی می اون هایی که روشن کننده هستند جرققه را فالموری فالمغیرات سبحان بس اونهایی که غارت کننده هستند صبحگاهان وقت صبح بر دشمن عمل می کنند فثر به نقعا و ایجاد می کنند برمی انگیزند اثاره برانگیختن و به هوا بلند کردن را میگویند برمی انگیزند بهی به سبب آن یا باب معنی فی هست در آن نقع گرد و غبار را وقتی که اسب میره به طرف دشمن و با یک سرعت خاصی تمام منطقه غبار میشه هیچ چیزی پیدا نمیشه فوسط نبیه جمع پس در آن جمع یعنی گرمی کارزار در وسط گرمی جنگ وارد میشوند اینها شاهدند اینها گواه هستند که ان الانسان لربه لکنود این جواب قسم است همان انسان نسبت به ربش به پروردگارش ناسپاس است ناشاکر است و این انسان خودش هم بر این گواه است و مطلع است و انه على ذالک لشهید همان این انسان بر این مسئله گواه است انسان هم یعنی مطلع است میدوند هر یکی از ما میدونیم که خداوند بر ما چقدر الطاف دارد مهربانی دارد و ما چقدر نسبت به ربمون کوتاهی داریم چقدر ناشاکر هستیم و دلیل اصلیش ببینی اینجا خدای عزواجل در این سوره های آخر یک چیز جالبی که هست در هر سوره هم مرض را بیان می فرماید هم سبب مرض را بیان می فرماید هم علاج مرض را بیان می فرماید همه ما این مریضی را داریم و سبب مرض هم اولا این مریضی مریضی ناسپاسی و ناشکری هست دلیلش چیه سببش چیه و انه لحب الخیر لشدید همانا انسان نسبت به حب مال خیر به معنی مال نسبت به حب مال محبت مال شدید هست سخت دوست دارد مال را اما علاجش علاجه این محبت فکر و ذکر آخرت است استحزار عذاب و استحزار قیامت همیشه وقتی که بزهن من و شما باشد قیامت و حساب و کتاب مقدار حب دنیا کاسته میشه از قلب کم میشه لذا می فرماد افلا یعلمو این علاج مراز است تخوی هم هماز افلا یعلمو اذا بعثر ما فی القبور آیا این انسان نمی وقتی که زیر رو میشه تبعصر زیر رو شدن بالا خاک های بالا میرن پایین پایین می بالا. یعنی اون چیزی که پایین هست جسد انسانه اونچی که بالاست خاکه این خاک میره پایین قرار میگیره اون جسد میزن بیرون افلا یعلم اذا بوعثرا ما فی القبور آیا انسان نمیداند وقتی که زیر رو میشه آنچی که در قبور هست و حس لما فی الصدور میشه آنچه که در سینه هرچی که انسان در دلش داشته اونجا حاشکار میشه اگر در دل شک بوده شرک بوده کفر بوده نفاق بوده سوی عقیده بوده هر چی بوده اونجا ظاهر میشه یا در دل مریضی دیگه بوده همه را خدای تعالی ظاهر میکند ان ربهم بهیم یوم اذل خبیر ان الا <اِلَّتَس> چون همان ان ربشان نسبت به آنان در اون روز خبر دارد از همه چیز الله تله ای عالم لا يخفى عليهم منهم خافیه و هو عالم بهم في ذلك اليوم و فی غيره خداوند در همه ایام نسبت به انسان عالم با خبر حست.